افسان برنابی از گروه جوان و فرهنگ. به نام خدای مهربان، آن یگانه بی همتا، سلام افسانه ها و قصه های آمیانه، عمری به قدمت عمر انسان دارن در مورد منشع و ریشه های تاریخی افسانه ها و قصه های آمیانه تحقیقات ای صورت گرفته و صاحب نظران و پژوهشگران بسیاری از های مختلف روانکاوی، روانشناسی، مردمشناسی، شناسی و تاریخ این ها و قصه های عامیانه رو تفسیر و تعبیر کردند. دامنه این تحقیقات به حدی گسترده است که در حال حاضر در بسیاری از کشورها به یک رشته دانشگاهی تبدیل شده و تا مقطع دکترا گسترش یافته. این هفته یه افثانه ایرانی براتون نقل میکنم به نام افسانه مراد لنگ برگرفته از کتاب قصه های فارس گردآوری حسین آزاده امیدوارم از شنیدن این افسانه زیبا لذت ببریم در زمانهای قدیم جوان فقیری بود که توی آسیابی کار میکرد و مزد میگره اسم این جوان مراد بود و چون یه پاش میلنگید به اون مرادلنگ میگفتن یه شب که برف سنگینی باریده بود و هوا خیلی سرد بود روباهی وارد آسیاب شد و به مرادلنگ گفت ای آسیابون چند روزه که من چیزی نخوردم و از سرماو و گرسنگی آه دیگه نا ندارم بیا و مهربونی کن و چیزی به من بده تا از گرسنگی نمیرم قول میدم که از این محبت و لطفی که به من میکنی تا زمانی که عمر دارم همیشه سپاسگزار تو باشم و بتونم این محبت تو رو جبران کنم مرادلنگ پوز خندی زد و گفت من به تو چیزی بدم من که آه ندارم تا با ناله سودا کنم. من بیچاره باید صبر کنم تا هر وقت باری برای آرد کردن و بردن یه کمی از اون آرد رو خمیر کنم و یه نونی برای خوردن درست کنم. میبینی؟ منم وضع درست حسابی ندارم. روباه گفت حالا که اینطوره پس اجازه بده زبونم رو به گوش و کنار آسیاب بزنم شاید آردی چیزی مونده باشه همینم برام کافیه مراد لنگ دلش با حال روباه سوخت و اجازه داد اطراف آسیا و سنگها رو لیست بزنه روباه هرچه آرد در گوشه و کنارها مونده بود زبون زد و سیر شد بعد هم گوشه دراست کشید و فرد و صبح روباه وقتی از خواب بیدار شد به مراد گفت من میخوام در مقابل محبتی که به من کردی به خدمت کنم مراد پرسید چه خدمتی؟ روباه گفت میخوام برم و دختر پادشاه رو برات خواستگاری کنم مراد لنگ با شنیدن این حرف شروع کرد به خندیدن <تصفيق> روباه گفت چرا میخندی؟ مراد لنگ گفت بابا دست از سرم بردار من یه همچه خدمتی رو نخواستم روباه گفت نمیخوای؟ آخه چرا؟ برای چی؟ مراد لنگ جواب داد دوست من چرا نداره؟ من از همه مردم این سرزمی بدبختنم حالا تو میخوای دختر پادشاه رو برام خاستگاری کنی؟ خدمت تو مسهره کردن منه؟ ها؟ روباه گفت، مسخره کردن چیه؟ تو، تو فقط رضایت بده بقیهش با من. باور کن جوری کارا رو ردیف میکنم که، مراد لنگ اونو قطع قد کرد و گفت، حالا به فرض اینکه که پادشاه قبول کرد دختری یکی یدونشو به من بده. این کار پول میخواد، قصری مثل قصر خود پادشاه میخواد. آدم خوشخیافه و کار میخواد من بیچاره کدوم یکی از اینا رو دارم ها روباه گفت دوست من اینقدر ناامید نباش تو تو فقط بگو بله دیگه کارت نباشه اگه تونستم که خوب اگه هم نتونستم که کسی با تو کاری نداره اگه بلای این وسط باشه سر من میاد نه تو خلاصه روباه اونقدر گفت و گفت و گفت تا بالاخره مرادلنگ با ناباوری و بیخیاری قبول کرد که روباه به قصر پادشاه بره و دخترش رو برای اون خستگاری کنه. روباه با قدم های محکم و استوار به سمت قصر پادشاه رفت وارد قصر که شد نگهبان های قصر جلوی اونو گرفتند. کجا؟ با کی کار داری؟ روباه گفت من منو فرستاده تا سبد پول پیمان پادشاه رو چند روزی قرض بگیرم عربابم میخواد مقداری از پولاش رو پیمونه کنه بعد اضافه کرد البته فقط مقداری از پولاش رو نگه اونها با شنیدن این حرف فورا پیش پادشاه رفتند و اون که روباه گفته بود بازگو کردند. پادشاه که از شنیدن این خبر تعجب کرده بود دستور داد روباه رو به خدمتش بیارن روباه وارد قصر شد و ادای احترام کرد پادشاه پرسید جلوتر بیا بگو ببینم ارباب تو کیه و چقدر پول داره که بجای شمردن سکه هاش رو با سبد پیمانه میکنه ها روباه گفت قربان فعلا دستور بفرمایید سبد پول پیمانه رو به من بدن بعدا اگه میل داشتید اربابم رو خدمت شما میارم تا ببینید چه جوون راناو و با کمالاتیه و چه قصر و املاک و بروبیایی داره پادشاه دستور داد که سبد پول پیمانه رو به روباه بدن و با خودش گفت بعدا دستور میدم اربابش رو بیارن قصر ببینم چه جور آدمیه روبا سبد پول پیمانه رو گرفت و به آسیا برگرد روباه وقتی به آسیا رسید تمام ماجرا رو برای مرادلنگ تعریف کرد. مرادلنگ با ناامیدی گفت بدبخت شدیم، بدبخت شدیم. حالا پول و قصر و املاک از کجا بیاریم ها؟ روباه گفت گصه نخور من درستش میکنم. مرادلنگ با ناراحتی و نگرانی گفت آخه جوری درستش میکنی؟ روباه گفت، چقدر پول داری؟ مرادلنگ جواب داد، تمام پسنداز من در همه ی عمرم چند تا سکه است. روباه گفت، خوبه، همین کافیه، اونا رو بده به من. بعد روباه سکه ها رو از مرادلنگ گرفت و اونا رو توی شکاف و درزهای سبد پول پیمان جا داد و چند روز بعد اونو برداشت و به قصر پادشاه رفت. و سبد پول پیمانه رو گذاشت جلوی پادشاه و گفت بربان، اربابم سلام رسوندن و از شما به خاطر این کمک تشکر کردن پادشاه سبد پول پیمانه رو برداشت و وقتی سکه ها رو در شکاف و درز سبد دید با خودش گفت آه ببین این بابا چقدر زرفتمنده که این سکه ها رو از سبد جدا نکرده باید باید همینم امروز این جوون رقنا و سروتمند رو ببینم بعد از روباه خواست تا اربابش رو به قصر بیاره روباه هم به آسیاب اومد و به مرادلنگ گفت آماده باش آماده باش تا تو رو به قصر پادشاه ببرم مرادلنگ با نگرانی گفت من من بیام قصر پادشاه بدبختی پشت بدبختی آخه من چه جوری بیام چی بگم چی دارم که بگم روباه گفت شلوغش نکن من تو دارم نگران نباش مرادلنگ گفت اصلا میدونی چیه اون آردایی که از گوش و کنار آسیاب خوردی نوش جونت حلالت من خدمت نخواستم. دست از سر کچل ما وردار تو خدا روباه گفت، ولی من قول دادم که در مقابل محبتی که به من کردی خدمتی به تو بکنم. مراد لنگ گفت، باشه، باشه، خدمت بکن ولی نه اینجوری، من کجا پادشاه کجا آخه؟ روباه گفت، تو اگه بذاری من دست دختر پادشاه رو میذارم توی دستت. مراد لنگ با نگرانی گفت، به خدا نخواستم من آدم بدبخت و مفلوم کیم دست از سر من بیچاره وردار روباه گفت آه دیگه دری شورش رو در میری برو برو زود آماده شو برو مرادلن که دید توان مقابله با روباه رو نداره ناچارن گفت خدایا چیکار کنم باشه قبول حالا باید چیکار کنم ها؟ روباه گفت بذار من برم این اطراف یه چرخی بزنم و برگردم بعد بد میگم چیکار کنی و بعد از مراد لنگ دور شد و به اطراف رن روباه شروع کرد به جستجو در اون اطراف و تا دور دست تا رفت و بالاخره در کنار چشمه اسب زیبایی دید که زین و برگ گرون قیمتی داشت و اونجا به تنه درختی بسته شده بود شخصی هم لباساشو کنار چشمه گذاشته بود تا آبتنی کنه روباه فورا لباس رو برداشت و همراه با اسب به آسیا برگشت مراد لنگ با دیدن اسب و لباسه پرسید اینا چیه؟ اینا رو از کجا آوردی؟ نکنه اینا رو دزدیده باشی ها؟ روباه گفت: ببین فعلا وقتی جواب دادن ندارم. بعدا میم از کجا اینا رو آوردم. بعد به مراد لنگ گفت که سر و صورتش رو صفایی بده و ها رو بپوشه. خلاص اونها به طرف قصر پادشاه برافتادند. مراد لنگ سوار بر اسب شد و روبا هم دهنه اسب رو به دست گرفته بود. حالا بشتبید از پادشاه پادشاه برای دیدن ارباب روباه یعنی همون مرادلنگ افزانی ما لحظه شماری میکرد پادشاه به همراه وزیر و اطرافیانش توی ایوون غص نشسته بودند که از دور روباه رو به همراه مرادلنگ دیدند وزیر با خوشحالی گفت قبله عالم به سلامت خودشونن اومدن روباه و مرادلنگ همینطور که به قصر پادشاه نزدیک می شدن یه دفعه اسب رم کرد و از جا کنده شد بیچاره مرادلنگ که خیلی ترسیده بود محکم به زین اسب چسبید و هرچه کرد نتونست اسب رو نگردره سر راهش درخت کوچیکی بود که اتفاقا توی زمین سستی رشد کرده بود مراد دستش رو دراز کرد و درخت رو گرفت که یه دفعه درخت از ریشه کنده شد و پادشاه و اطرافیانش از این تاخت و تاز و زور و بازو تعجب کردند بله بالاخره روبا خودش رو به اسب رسوند و افسارش رو گرفت و چند دقیقه بعد به حضور پادشاه رسیده پادشاه با دیدن مراد لنگ سری تکون و گفت مم، آفرین تو جوون پرزور و قدرتمندی هستی خوشمان آمد روباه با هیجان گفت قربان قربان ارباب من هنرهای زیادی داره اون قصر بزرگی داره که لنگش البته البته جسارت منو ببخشید بله لنگش جای دنیا پیدا نمیشه از کمالات اربابم که واقعا نمیدونم چی بگم پادشاه همچنان سرش رو تکون میداد و از تعریف هایی که روباه از اربابش میکرد هم لذت میبرد و هم تعجب میکرد روباه که اوزار رو مناسب دید با احترام گفت قربان هرسی داشتم خدمتتون اجازه میفرمایید درس کنم پادشاه گفت بله ارز کنید روباه گفت قربان قربان میخواستم به عرض قبله عالم برسونم که ارباب من با تمام کمال و جمال و منال میخواد با... با دختر شما عروسی کنه البته جسارتن پادشاه سریع و گفت <مزنان> از این بهتر نمیشه البته البته من باید قصر و املاک این جوون رعنا و پرزور و بازور رو ببینم روباه گفت البته قربان، البته این حق شماست فقط اجازه بدین تا من به قصر برم و اونجا رو برای ورود شما و مراسم عروسی آماده کنم قبوله؟ پادشاه گفت بله، فکر خوبیه به بعد روباه و مرادلنگ از حرفای روباه زبونش بند اومده بود از قصد خارج شده روباه و مرادلنگ وارد آسیاب که کشدن مرادلنگ گفت دیدی؟ دیدی چه خاکی به سرمون شد؟ حالا قصر و املاک از کجا بیارم ها؟ اگه پادشاه بفهمه که من نه مالی دارم و نه ثروتی اون وقت سرم بالای داره روبا بوز خندی زد و گفت بالای دار؟ ارباب جان تو جات بالای تخت پادشاهیه نه بالای دار قصه نخور خودم درستش میکنم بعد از آسیاب بیرون رفت تا به قول خودش کارا رو درست کنه روبا اطراف آسیاب چتری زد پشت کوههای اون اطراف جای خوش آب و هوایی بود و بالای یه تپه قلعه زیبا و باشکوه به چشم میخورد روبا با خوشحالی گفت ها عجب قلعهٔ باشکوه و جلالی درست همون چیزی که میخواستم بعد فوری خودش رو به بالای تپه رسوند و شروع کرد به داد و فریاد و شیون مردی از قلعه بیرون اومد و با تعجب پرسید چی شده چه خبره؟ چرا گریه میکنی؟ روباه در حالی که شیون میکرد گفت چرا گریه نکنم؟ حیف نیست ساکنان این قلعه نابود بشن چرا گریه نکنم؟ مرد با تعجب پرسید نابود بشن یعنی چی؟ روباه گفت مگه خبر نداری؟ پادشاه یه لشکری به اندازه ی... مور و ملخ تدارک دیده تا به اینجا حمله کنه و همه شما رو از بین ببره وای خدا واده. حیف این قلعه حیف ساکنان این قلعه که از بلایی که داره سرشون میاد بیگه مرد با وحشت و حراسون به داخل قلعه رفت و در چش چشم هم زدن همه ساکنان قلعه دور رو با حلقه زدن و با ناراحتی و نگرانی گفتن روبا رو با تکلیف چیه؟ ما باید چیکار کنیم روبا در حالی که شیون میکرد گفت بای، بای، بای، بای. در مح بعد پختی و بلا چی میشه کرد هیچ هیچی حیف حیف شما که در عرض چند لحظه نابود خدا آ خوددا حیف واقعاغن حیف قلعه گفتن آخه باید چیکار کرد ها؟ عقل تو بهتر از ما کار میکنه روباه جان خواهش میکنیم چاره ای پیدا کن فکری به حال ما کن روباه گفت شما شما یا باید فرار کنین یا چاره دیگه پیدا کنین خلاصه روباه اونقدر ساکنان قلعه رو از حمله پادشاه ترسون که اونا یک صدا گفتن آره آره فرار بهترین راه حله ما رفتیم و با شتاب از قلعه دور و دورتر شدند روباه موند و قلعه با شکوه و خالی از سکنه با بعد از فرار ساکنان غلعه فوری به سراغ مرادلنگ رفت و تمام ماجرا رو برای اون بازگو کرد و غلعه رو با تمام جواهرات و طلا و سکه به مرادلنگ تحویل داد و خودش هم رفت سراغ پادشاه چند ساعت بعد پادشاه و همراه اطرافیانش وارد غلعه شدند و همون بود که پادشاه دستور داد مراسم عروسی مرادلنگ و دختر یکی یدونش رو برگزار کند خلاصه نوازندگان هفت شبان روز ساز و نقاره زدند و مرادلنگ به کمک روباه داماد پادشاه شد بله هر روز به شادی و خوشگذرونی مشغول بودند تا اینکه یه روز دختر پادشاه به مرادلنگ گفت روباه امروز غذا نخورده فکر میکنم حالش خوش نباشه هر چی صداش میزنم جوابی نمیده شاید مریض شده شایدم هم نکنه مرده باشه مرادلنگ با عصبانیت گفت مرده باشه که باشه بگو دومشو بگیرن اندازن بیرون تو یه گادال روبا با شنیدن این حرف یه دفعه از جا بلند شد و گفت آه واقعا که نمک نشناسی تو یکم به من آرد دادی من این همه به تو خدمت کردم تو رو از بدبختی و آسیابونی داماد پادشاه کردم حالا میگی مرده که مرده، دُممو بگیرن و بندازن تو گودال. مراد لنگ لحظه لحظه‌ای به فکر فرو رفت و تمام خوبی‌های روباه رو بیاد آورد و از اینکه چون این برخوردی رو کرده شرمنده شد و از روباه عذرخواهی کرد. و بعد دستور داد طوق طلایی به گردن روباه بندازن و دمش رو حنا بذارن و با عزت و احترام در کنار خودش روی تخت به اون جادا. روزها گذشت و گذشت تا اینکه واقعا روز مرگ روبا فرا رسید و روبا از دنیا رفت. مرادلنگ دستور داد روبا رو در ترمه و دیبا بپیچند و با احترام به خاک بسپرند. بعد یه چارتاقی زیبا هم روی قبر روبا ساخت. به تا آخر عمر همیشه با عزت و احترام از اون یاد میکرد. افسانه ایرانی مراد مرادلنگ رو براتون نقل کردم برگرفت از کتاب قصههای فارس به گردآوری حسین آزاده. افسانهها ها حکایت های بازگو شده از هزاران سال قبل نیستند بلکه روایت زندگی روزمره ما هستند. افسان کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت سالحپور میراستار مدیر استار سید فری برز نور نوربخش اجرا مهران دوستی سردبیر اکبر نیکاین تیع کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانهای دیگر بدرو